فصل 10 عیسی از آنجا به افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی رود اردن رفت. باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او به عادت همیشگی خود به تعلیم آنان پرداخت. اده ای از فریسیان پیش او آمدند و برای امتحان از او پرسیدند: آیا مرد مجاز است که زن خود را طلاق بدهد؟ ایسا در جواب آنها پرسید موسا در این باره چه دستوری داده است؟ آنها جواب دادن موسی اجازه داده است که مرد با دادن طلاقنامه به زن خود از او جدا شود. ایسا به ایشان فرمود به خاطر سنگ شما بود که موسی این اجازه را به شما داد و الا خدا از اول خلقت انسان را به صورت مرد و زن آفرید. به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و این دو یک تن واحد می شوند. یعنی دیگر آنها دو نفر نیستند بلکه یک تن می باشند آنچرا خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد در منظر شاگردان با هم درباره این موضوع از ایسا سوال کردند او به ایشان فرمود هر که زن خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. همینطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند، مرتکب زنا شده است. بچه ها را پیش ایسا میآورند، آورند، تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردن. وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان فرمود، بگذارید بچه ها پیش من بیاین مانع آنها نشوید چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد هیچ وقت وارد آن نخواهد شد سپس ایسا کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته بر ایشان دعای خیر کرد وقتی عیسی آزم سفر شد شخصی دوان دوان آمده، در برابر او زانو زد و عرض کرد، ای استاد نیکو، من برای به آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود، چرا مرا نیکو میخوانی؟ هیچکس هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می دانی. قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، کلاه برداری نکن، پدر و مادر خود را احترام کن آن شخص در جواب گفت ای استاد من از جوانی همه اینها را رعایت کردم عیسی با محبت به او خیره شده فرمود یک چیز کم داری برو آن داری بفروش و به فقرا بده که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا و از من پیروی کن آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود با قیافه محسون و با ناراحتی از آنجا رفت عیسی به اطراف نگاه کرد و به شاگردان فرمود چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا شاگردان از سخنان او تعجب کردند اما عیسی باز هم به آنان فرمود ای فرزندان وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر دشوار است رد شدن شطور از سوراخ سوزن، آسانتر است از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا. آنان بی تعجب کرده و به یکدیگر میگفتند پس کی می تواند نجات یابد؟ عیسی با آنان نگاهی کرد و فرمود، برای انسان غیر ممکن است، اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد. پتروس در جواب ایسا شروع به صحبت کرده گفت، ببین ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو به تو شده ایم عیسی فرمود یقین بدانید که هرکس به خاطر من و انجیل خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید در این دنیا صد برابر خانه و برادر و خواهر مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنج ها و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد اما بسیاری از آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند شد و بسیاری هم که آخرین هستند اولین خواهند شد عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش شاگردان حرکت می کرد. شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می‌آمدند بسیار می‌ترسیدند ایسا دوازده شاگرد خود را به کناری برد و درباره آنچه که می باید برایش اتفاق افتد با آنها شروع به صحبت کرد و به آنها فرمود ما اکنون به اورشلیم می رویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود سپرده خواهد شد آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد آنها او را مسخره خواهند نمود و رویش آب دهان خواهند انداخت او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت اما پس از سه روز دوباره زنده خواهد شد یعقوب و یوحنا پسران زبدی پیش ایسا آمده گفتند: ای استاد ما می خواهیم که آنچه از تو درخواست می کنیم برای ما انجام دهی بهشان گفت چه می برایتان بکنم؟ آنها جواب دادند. به ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در دست راست و دیگری در دست چپ تو بنشینیم. عیسی به ایشان فرمود شما نمیفهمید چه میخواهید. آیا می توانید از ای که من می نوشم بنوشید و یا تعمیدی را که من می گیرم بگیرید؟ آنها جواب دادند می عیسی ایسا فرمود از ای که من می نوشم خواهید نوشید و تعمیدی را که من می گیرم شما هم خواهید گرفت. اما نشستن در دست راست و یا چپ من با من نیست. این به کسانی تعلق دارد که از پیش برایشان تعیین شده است. وقتی ده شاگرد دیگر این را شنیدن از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند. ایشان را پیش خود خواند و فرمود: میدانید که در بین ملل کسانی که فرمان نوا محسوب میشوند بر زیر دستان خود فرمان روایی می‌کنند و بزرگانشان نیز بر آنها ریاست می‌نمایند ولی در بین شما نباید چنین باشد بلکه هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد و هر که می‌خواهد اول شود باید غلام همه باشد چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد آنها به شهر اریها رسیدند و وقتی عیسی به اتفاق شاگردان خود و جمعیت بزرگی از شهر بیرون می یک گدای نابینا به نام بارتیماوس پسر تیماوس در کنار راه نشسته بود وقتی شنید که ایسای ناصری است شروع به فریاد کرد و گفت ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن، عدهٔ زیادی او را سرزنش کردند و از او خواستند تا ساکت شود ولی او هرچه بلندتر فریاد میکرد ای پسر داوود بر من رحم کن، عیسی ایستاد و فرمود به او بگویید اینجا بیاید آنها آن كوه را صدا کردند و به او گفتند خوشحال باش بلند شو تو را میخواهد بار فوراً ردای خود را به کناری انداخت و جای خود بلند شد و پیش ایسا آمد. عیسی به او فرمود: چه میخواهی برایت بکنم؟ آن کور کرد: ای استاد، میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود: برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود را باز یافت و به دنبال عیسی به راه افتاد.